بازنگری در تاریخ قلم رو میانی. ایرانی ها فقط شامل پارس و پارت و ماد نیستن بعد بگن دم بو بودن کاسی و و چیو اینا همه فکر میکنن حه ها همین مظون من هخامنشیان بله هخامنشیان فقط پارس نبودن هخامنشیان از آمیختن همه جمعیت ایرانی به ویژه حه ها مادها و ایامی ها به وجود اومدن حه ها خودشون جمعیت جداگانی ایرانین بسیار جمعیت بزرگان در قسمت های شمالی تر زندگی میکردن نسبت به پرشی و گسترش بسیار عجیبی به سمت باختر داشتن بنابراین ما میتونیم سلم ها رو بخشی از حقاها بدونیم بخشی از آموها بدونیم آموها هم جمعیت بسیار تأثیر روزاری بودن بخشی از پرشی ها بدونیم که تقریبا هیتی ها رو بدونیم مردمان جنوب اروپا رو بدونیم تور ها رو در جای خودشون میتونیم همون آموها بدونیم حقاها بدونیم که با سکاها بودن. دانوها بدونیم، که هیچ اشاری تو این تاریخ‌های موجود اصلا نمیدونن دانو چی هست ما سه حالت بازه زمانی تعریف کردن یکی کرونولوژی یا گاه نگاری کوتاه هست یکی میانه است یکی بلنده اون چیزی که من نوشته بودم بر گاه گاهنگاری میانه است این نرمسی میشه 2250 و 2254 تا 299 در هر صورت بله در هر صورت این دوتا چیز با هم تطبیق دارم اجازه بدید من قبل از اینکه بگم اون متن سارگون اکدیام بگم که این متنشون میگه که در بند پنج و افتون کتیبش میگه کرزین که در بالای فلان سرزمین جای دارد کسانی که سبک موهایشان با یک تیغ انتخاب میشوند مثل که سرشون تیغ میزنید آنها بل ایده شک میشوند با آتش کسانی که خاک سپاری رو نمیشناسند کاملا یک سنت قدیمی هندورپایی توصیب میکنه با یک شهری که اسم هندورپایی دارد به نام ایزد یکتا با عرض سلام و عدب احترام خدمت شنوندگان گرامی همراهان صدای امید همراهان برنامه ایران ویج قسمت دوازدهم رو در خدمت شما هستیم و دیگه از این برنامه می‌خوایم مقدمات رو به طور کامل تموم بکنیم و وارد متن اصلی بشیم عنوان برنامه ما ایران ویج هستش یا به قول یکی از دوستان ایران ویج یا ایران ویج یا ویج حالا در مورد موردش بحث خواهیم کرد جناب کلمی به عنوان زبانشناس این برنامه در مورد این مسئله بحث خواهند کرد بگذاریم ما میخواییم در قسمت دوازده هم که وارد بحث اصلی بشیم اول اصلا برنام که این ایران ویج اصلا کجاست ما به کجا میگیم ایران ویج در مورد خود مفهوم ایران که به عنوان یک ایران سیاسی به وجود اومد در دوره‌ای که حالا دوره فکر کنم منوچهر هستش بریم بهش خواهیم می‌رسیم که اصلاً چطور به وجود اومد این هویت از کجا اومد این ایران از کجا اومد ولی این عنوان برنامه‌ای که با نام ایران وچ هستش ما اول باید بررسی بکنی که محدوده جغرافیایی حالا محدوده جغرافیایی دقیق مثل الان که مرزهای سیاسی توسط استعمار تعیین منظورمون نیست یه سر مرزهای تقریبی هست مرزهایی که عنوان مناطق مناطق کوهستانی رودخانه ها و دریا دریاها این مناطق رو بر اساس اسناد تاریخی و اسناد استوری و زمان و اقلیم شناختی و بعد هواشناختی مورد بررسی قرار خواهیم داد که اساساً این منطقه ایرانویج کجاست به چه خصوصیاتی داره از چه تاریخی شروع شده؟ اینا باید مورد بررسی قرار بگیره که کوهن بودن تاریخ ایران که ما بهش مدعه هستیم باید مورد بررسی قرار بگیره اینکه دلیل اصلی که ما مورد نقد قرار دادیم تاریخی که متاسفانه رسمی شده و ادعام این هست که غربی ها برای اینکه تاریخ مدنیت خودشون رو جلوتر از تاریخ مدنیت حال قلم روی میانی و این ایران، قرار بدن این فرضیه رو درست کردن ما معتقدیم که جلوتر هستش و برای این که بخوایم در این مورد بحث بکنیم باید محدودی تاریخی و محدوده جغرافی های این ایران به جنون هم مثل تقریبی ما حتی میشه گفت که شاید انحراف چند ست ساله هم توی اون تاریخ که ما میگیم حتی تاریخ هایی ما خصوصا شروع پادشاهی ها و شروع مدنیت و شروع در واقع به وجود اومدن جمعیت های انسانی و شکلی جمعیت های انسانی در این منطقه ایرانویجی که ما می خوایم تعیین بکنیم جناب آقای ایران میره گرامی در قسمت 12م ما می از شما شروع بکنیم شما ایرانویج رو کجا می دونید و تاریخ به وجود اومدن ایرانویج رو به طور تقریبی چه تاریخی می دونید چند سال پیش چند هزار سال پیش هم ده هزار سال پیش درود بر همراهان گیرامی برنامه از چند منظر میشه این موضوع رو نگاه کرد دیدگاه های مختلفی وجود داره این دیدگاه رو من باید بگم که چه نوع نگاه هایی به این موضوع هست اگر از دیدگاه تاریخ موجود بخوایم بگیم ایران و چیه خیلی خلاصه در یک جمله کوتاه میشه گفت که از دیدگاه تاریخ موجود ایران ویج یعنی بوق این قبول نداره واقعا یعنی همون میتولوژی و داستان و اصلا اسطوره هم... اصلا همیتی نداره که بهش پرداخته بشه این دیدگاهی که الان تو دانشگاه های ما داره تدریس میشه علوم انسانی ما بر این پایه گذاشته شده که ایران ویز یعنی بوق یعنی هیچی یعنی اصلا نبوده یعنی اصلا دنبالش نرو حرفش هم نزن اما در مقابل اینا یک دسته هستن که خیلی تلاش میکنن تاریخ روایی ما رو بهش جان ببخشن یعنی دوست دارن زمان پادشاهی فریدون رو تعیین کنن تو ذهنشونه که شخصی به نام جمشید تاج داشته، اسای شاهی دستش بوده، کاخش مثلا پله‌هاش اینجوری بوده، تختش اونجوری بوده، مثلا اسبش با سپاش اونجا می‌رفتن اینا. این یک نوع نگاهه، این یک نوع نگاه دیگه است. این ایرانی تره، اما به نظر میاد که تاریخ موجود که اصلا هیچی اینا که تو دانشگاه ما تدریس میشه که اصلا گفتم به درد فکاهی و تنز می‌خوره. این دوستانی که تلاش میکنن این تاریخ روایی رو جان ببخشن یه مقدار از اون تطبیق ظاهرا غافل شدن یعنی اینی که اینا استوره است اینا متن تاریخ ما نیست اینها باید معنا بشه اینی که مثلا کیکاووس به آسمان میره که خب مثلا ما چی بگیم بگیم مثلا هواپیما اختراع کرده بودن این تاریخ بوده بعد بهمون بخندن پس اینا باید تطبیق داده میشه. به نظر من هر دوش اش این وقتی من تاکید میکنم ما نخوستیم باره داریم این نوع نگاه رو میکنیم یعنی میخوایم تطبیق بدیم نه تاریخ موجود رو برکه تاریخ مستند علمی رو با تاریخ رواییم دکتر درخشانی جان شده درخشانی در دانشنامه کاشان خدا بیامرزشون تاریخ مستند رو دگرگون کردن. یعنی نوع نگاه به تاریخ مستند رو که با بر پایه اسناد باشه ایشون دگرگون کرد. وقتی میگیم دانشنامه کاشان ی کتابی بالا بر 800 صفحه چند سال پیش از اون یک کتابی یشون منتشر کردن در 57 صفحه اینو در سیدنی ارائه کردن پیش از آی دکتر جرارد مولر و خدا بیامرز پروفسور دیشارت فرای خیلی هم تحسین شد اون کتاب نامش بود که آریايان در منابع کوهن خبر نز نزدیک نزد... نزد... هزارایی سوم و چهارم سوم و چهارم خبر نزدیک بعد این کتاب باز دادن در سال 1998 به آلمانی منتشرش کردن این این کتابی که امروز به وان داشتنامه کاشان جلد داریم. بعد این به انگلیسی ترجمه شد. در سال 1882 در همکاری با بنیاد فرنگ کاشان اینو با فارسی با اضافاتی، هایی منتشرش کردن. ما هی به این استناد میکنیم آخ دکتر ما آخه پجروش در این سبک و با این نگاه آخه چی بگیم؟ بگیم امستد گفته، بگیم مثلا هینس گفته، بگیم هرسفیلد گفته، بگیم گرشمن گفته. خب اون‌ها که به نظر ما اصلا جهت ادخال مزاح در قلوب مؤمنین بیشتر به درد می خورد رجوب اونا وگرنه به درد تاریخ نمیخوره به کتاب ها. این دانشنامکاشون ای سرنافرزی داشتن برنامه شونو میدادن استاد راهنما و اینا هی آقا چرا برنامه 600 صفر است بعد باز خودشون میگفتن خب البته پیشنه پجوش نداشته دیگه تا حالا کسی نگفته که مات ها در هزارم سوم حاکم سیاسی داشتن راست میاد رو کتاب کدوم کتاب به حرف هیچ کدومشون واقعا بعد اونجا تازه گیرم دادن که درسانی که تو میگی یا آرشیتکت بوده من تعجب میکنم تو دانشگاه تهران یعنی شما یعنی یا اینقدر نامردین که نمیگین یا اینقدر نمیدونین اطلاعات ندارین که این دکترا با دکترای تاریخ با گرایش خاور نزدیک از دانشگاه ایروان داشته کسانی که پژوهشای های دکتر درخشانی رو تعیید کردن با نامه کتبی من میخونم تا اینا خجالت بکشن دانشنامه کاشان و اینا با نامه تایید کردن دانشنامه کاشان فقط به شما بگم کتابایی که تاش 10 صفحه 15 صفحه کتاب نامه داره منابع معاخذ داره یاری نامه داره دانشنامه کاشان منابع معاخذش معاخزش تاش جا 482 صفحه به عنوان جلد 4ه دانشنامه منتشر شد هزار سند دسته اول که 14 سال روشون کار شده بود اینا از جمله کسایی که تایید کردن این کتاب رو با نامه کتی پروفسور مانفردت ماير هوفر رئیس کرسی ایرانشناسی دانشگاه وین پروفسور روبرت اشمیت براند استاد زبانهای هندو و اروپایی دانشگاه هایدلبرگ آلمان پروفسور پیوتر اشتاین کلر رئیس کرسی آشورشناسی دانشگاه هاروارد مثلا ای پروفسور اشتاین کلر سال 1998 در رد نظری هرتسفلد در 1960 منتشر شده نظریه منتشر کردن و کوچ ها را رد کرد آخ آشورشناسه سال 2000 داره زندگی میکنه نمیتونه شرطوپرتایی که من گفته اینم بگه که امروز بچه ها میرن تو سنگاپور تو ژاپن تو مال تو برزیل تو فضای مجازی میگردن پجروشای جنتیکی رو میبینن نمیتونن دیگه بپذیرن در یک جای بنا فلات ایران کوش از بالا به پایین انجام شده وقتی شواد ژنتیکی برعکس شو میگن بنابراین ای دیگه این دیگه دو با اینکه غربیه نمیتونه آبروی خودشو ببره آشورشناسه سنده آشوری رو خونده میدونه چه خبره. نام پارسو ماد رو قبل از سلمان سوم دیده. دیده. پروفسور اما خانزادیان، رئیس کرسی باستانشناسی دانشگاه دولتی ایروان. پروفسور گولگین ملیکیان، رئیس دانشکده خاورشناسی دانشگاه ایروان. پروفسور گارنیک آساتوریان، رئیس کرسی ایرانشناسی دانشگاه ایروان و رئیس مرکز ایران شناسی قفقاز. دکتر ویرجیل استرمایر مایر استاد خاورشناسی دانشگاه آمریکایی یلوان حالا چون از وسیله برنامه خارجه من فقط خواستم بدونین که شنوندگان بدونن و اونایی که میشنونن که ما میگیم هی hey, دانشگاه آمریکا دکتر درخشانی چی داریم میگیم و از کی داریم صحبت میکنیم اون روایت که ما میگیم تقریبا نزدیک به هایی که از جمله حکیم ابو فردوسی ابو منصور عبدالرزاق والی خراسان که دستور دادین تاریخا جمع بشه معمری ماو دکتر جواد صدرخسانی، استاد فریدون جنیدی، دکتر مازیار اشرفیان بناب که حتما اشاره میکنیم های پژوهشای ایشون در دانشگاه پورتسموس، دکتر بدیه دشتی بعد میگیم چرا ایشون به دنبال های جمشید در بوشهر میگرده کامبلان جای درستی رو داره میگرده دکتر حسین وحیدی، دکتر میترا مهرابادی اینا کسانی هستند که تقریبا به این نگاهی که ما میخوایم بکنیم نگاهاشون نزدیکه حالا اون کسای هم مثل گرشمن و بویسو و دیاکنوف و کلیستنسن و کامرون و هیندس و کرتیس و ویسوفر و کینگ و دایسن و هرسفلد تو ایران تلایی ملکزاده عبدی علیزاده تا خب جای خودشون استاد... محترم. محترم محترم هم دیدگاهشون دیگه دینه میدینی آقا اینا پجوشکر نیستن یه دکترای گرفتن هم کتابی خونده رو دارم بازگو میکنه راوینا حالا پیر نیا بنده خدا تو هفتاد سال زمان خودش با مقتضیات زمان خودش یه کتابی نوشت دیگه اون به اطلاعات امروزه ما دسترسی نداشت نمیشه خیلی بهش به حساب حالا ایراد گرفت اگه حتما زمان ما بود خب با اون دیده وسیعی که داشت حتما یه چیزی مثل دکتر جانشا درخشان میشد برای رسم اینnavbar تاریخی ما ناشاری ما دکتر یه کارای تازه‌ای بکنیم نوع نگاه به اون چیزی که دوستان دارن میگن تاریخ ما یعنی همون تاریخ روایی ما ببینیم کسانی مثل کیستنسن و استاد پیرنیا خب اینها رو به کلی افسانه میدونن به نگاه افسانه بهش نگاه میکنن بعضیا تلاش میکنن یه تاریخ تطبیقی چیز کنن مثلا تطبیقشون به این صورته که مثلا دنبال میگردن که حخامریشون اشکانیان رو با این شاههای که تو این چیزا آمده تطبیق, تطبیق کسایی مثل نولکه هرتفیل هرتل اینا این کارو میکنن گاهی هم که دستنسن و پیرنی ها تلاش میکنن کسایی مثل کیخسرو رو تذکر بدن. آره، به جز اینه مثلا میان حالا اون افسانه ایه یکم هم تاریخی تطبیقش بدن. با یکی از شاهای اخا مریشیایی اینا بیشتر کیخسرو رو با چون منشور داره تو شاهنامه با کوروش آره. بله یه دستی سومی هن که میگن اینا اصلا تاریخ هن و پشت سر اخامنشیان. یه تاریخای میگن حالا من اینجا بایدن میخونم خیلی تاریخای نزدیک به اخامنشیان رو شروع میکنن. کیومر از حدود هزار سال پیش میاد تو می چکس از بخانان هم دور اسلامی بله حالا من فکر می کنم مثلا که تو تورات حدوداً گشتن آدم رو 6000 سال پیش پیدا کردن اینا هم گفتن کیومر هزار سال پیش چسبونن بخانانش نه دقیقاً اتفاقاً تو متون اسلامی هم هست مثلا میان خب حالا تو یکی از بنام گذاشته اثر کردین مثلا غزالی هم حتی به این اعتقاد داره که, که از فرزندان حضرت آدم هست بل بل. آدم اول بشرم که بر اساس متون سامی یه چیزی نزدیکی به هفت هزار سال یا بعضی حتی پنج هزار سال پیش از میلاد تلقیه میکنن بعد بر اساس همین آدم اول بشر چون کیومرز فرزند آدم اول بشر تلقیه میشه بر اساس اون تاریخ ها رو جمع می یه چیزی پیش دادیان رو مثلا یه چیزی دو دود دو 3-4 دو هزار سال رست میکنن بعد وصل میکنن به دوری مادها و بعد تقاملشیان و تا میان دو دوری اسلامی طبعا. که آه. بر اساس همین نوار تاریخی هستش ولی خب این برنامه و کاشناسانی من متقدن که این نوار تاریخی دقیق نیستش و کهانتر هستش بله. من فقط درمون فرمای شما رو مثال بزنم یه پایش. تاریخ در وردن میگن کیومرس 3698 پیش از میلاد بله؟ جمشید 6598 پیش از میداد. یعنی مثلا 5500 سال پیش دیگه. بعد دیگه اینا رو میچسبونن و میان میرسن تا دارا و اینا یک عده دیگه هم هستن که اصلا میگن این فرمان روایان پیشدادی کیانی مربوط به روزگاران کهن ایرانن حالا من عرض کنم که من این دستبندی اول و این چهار تا دستبندی رو از رو کتاب کی گشتاس در روزگار نوسنگی آیه سورنا فیروزی خوندم خیلی کتاب جالبی. من میخوام بگم ما بنده دست کم خودم تو این برنامه می یک تفکری رو مطرح کنیم با کمک دوستان یک دیدگاه پنجمی رو حالا ارائه بدیم بله حالا شماره پنجم بالاخره یه دیدگاه جدا از اون چهار تا ببینین اون چیزی که اومده توی امروز هست خب امروز اینایی که تاریخ موجود رو روایت می‌کنن وقتی میخوان درباره شاهنامه نظر بدن اینجوری نظر میدن من اینا چرا اینا همه چیز رو دوست دارن سه بخش کنن پارس و پارت و ماد اینجا هم کردن میگن یه دوره اسطوره‌ای داشته که اینا افسانه یه دوره پهلوانی, پهلوانی داشت، یا هماسی هم میگن یا دوره تاریخی داشته مثلا وقتی میگن دوره تاریخی رو از یک حدودی مثلا زمان های عشقانی ساسانی به اونور میدونن یعنی مثلا انگار که مثلا گشتاس مثلا دیگه اینجا کشکساب بوده نبوده دیگه انگار تاریخی نبوده دیگه گشتاس با این هم سند در باره اینگار نبوده یا مثلا دوره پهلوانی مثلا تحمورسه که تو شاهنامه پهلوان اصلیه. اونو تو دوره افسانی قرار میدن خب پس انگار اون قهرمان نبوده دیگه اگه دوره وسطی رو شما قهرمانی میدونید ببینید ما باز اینجا نیاز داریم همونجور که دیدگاهی که نسبت به اصطور و افسانه کردیم نسبت به تاریخ رواییمونم یه دسته‌بندی ارائه بدیم روی نخستین بار من تاکید میکنم نخستین بار ما میخوایم این دسته‌بندی رو انجام بدیم خدمتتون بگم که ما یک تاریخ رواییمون رو به دو بخش کلی بخش می یکی نماد دوره درسته. یا شخصیت دوره اون نمادها و شخصیت ها نشاندهنده یک دوره هستن بله. یعنی کسانی مثل کیومرز، تحمورس، اوشنگ نماد دوره یه دوره داریم اینا نماد انسان یا شخصیت انسان هستند شخصیت هایی که هر کدومشون نشانگر یک انسان هستن. مثل گشتاس، مثل داراب ما کاملا سندای تاریخی داریم که اینا دوره نیستن آدمن بله یه دوره میان این دو دوره کلی همپوشانی داره یعنی نه جزء دوره اول کامل نه جزء دوره دوم در که نشانه هر دور هم داره اینا نماد جمعیتا یعنی اون بخش شخصیت جمعیت مثل ایرج نشان دهنده نماد یک جمعیتیه سلم نشان دهنده یک منوچهر نشان دهنده یک دوران ایرج نه یک دوره یعنی ایرج نه نشان نشانگر یک دوره نه یک انسان یک جمعیتی رو داره نمایندگی میکنه بعد پشت سر این پشت سر اون قسمت شخصیت انسان یا نماد انسان اون بخش گزارش های مستند دیگه واقعاً تاریخی آغاز میشه که اصلا سنده داریم که آب دیگه چه خسرو رفت و این رستم فر و خرمز جنگید و دیگه اینا دیگه اصلا عین سندی که بارها و بارها در سند دیگه هم روایت شده یه اصل فلزات اصل فلزات به این من دیگه مشخص من شده مشخص. کنم که دست کم بنده و دوستان دیگه هم اگه بخوان تاریخ روایی رو با این روایت که هست نگاه نکنن احتمالا با این نگاه نگاه خواهند کرد بل. اگر هم نگاهشون طور دیگه خب میگن شنوندگان اینو بحث میکنن با... پس ادامه فرمایش ها اینجا باش و ما دخدمت شما هست خیلی متشکرم شنوندگان گرامی قسمت دوازده همی ایران ویژ رو در خدمت شما هستیم پول ارتباطیش شما شنوندگان گرامی با تمام برنامه های صدای امید ایمیل info at صدای امید هست و همچنین شماره پیامک 306822 چهار. منتظر شنیدن انتقادات پیشنهادات و نکات تکمیلی شما شنوندگان عزیز هستیم خوام دکتر احسانی جناب آقا ایران مهری تقسیم بندی نسبتا جدیدی من جایی خواستی ندیدم اینو شاید یک سری مثل کمال نماد دوره نماد انسانی شاید چیز بدی ای باشه چود تازه ای باشه شاید مثلا یسه تحصیل‌مندهایی هستش که ایشون ایده ای رو از سوژش رو مثلا گرفتن رو با کلمات و همچنین با, با نگاه جدیدی که به در واقع تاریخ اسوری دارن اینها رو نامگذاری کردن دیدگاه شما نسبت به ایران وچیه چه از لحاظ جغرافیایی و چه از لحاظ تاریخی و اصلا نسل این انسان‌هایی که تو ایران وچ هستن حالا تو فرماشاتون تو قسمت 11 هم شروع کردید در مورد کیمرس و اون دوتا زن و شوهری که در واقع هوشنگ از اونها بدانیام میاد ادامه فرمایشات شما رو در رابطه با اون قسمت 11 هم میشنمیم و هم موضع شما رو در باری همین مفهوم ایران وج درود فراوان به شنوندگان گرامی برنامه خب من اگر بخوام اون بحث جلسه پیش رو ادامه بدم یک بحث است بخوام؟ اگر بخوام درباره ایران وج حالا اون سرزمین آغازین سخن بگم یک بحث دیگه است منطقه چون که پس از اینکه من درباره که اومر صحبت کردم درباره اون انسان آغازین در اسطوره‌های های ما صحبت شد دوستان دیگه هم صحبت کردن و فکر می کنم که یه چند جلسه در ای درباره صحبت خواهیم کرد من در واقع یک توضیح شاید تکمیلی بدم درباره اون بحث اگر فرصت شد راجع به ایرانویژ هم صحبت خواهم کرد ببینید ما در اسطوره های ایرانی نخستین انسانی که داریم ازش نام برده میشه در واقع کیومرس هست ولی این کیومرسی که در اسطوره های ما وجود داره حالا البته من میدونم که اینجا هستن دوستانی که باور به این دارن که کیومرس شاید که یک شخصی بوده شخص بوده یا نخستین شاه بوده باشه ولی بر اساس استوره های ما مرز خیلی هم وجهه انسانی شاید بتونیم بگیم که نداره و اون نخستین شاه یا نخستین آدم، انسان خدا، هر چیزی که میتونه باشه نمیدونم والا اسمش چی میتونه باشه اون رو شاید اگر استوره های خودمونو با و سوره های ودایی تطبیق بدیم بشه جمشید در نظر گرفت اما یه مسئله ای هست ببینید توی وداها جمشید هستش که نخستین, نخستین در واقع انسان خدایی هستش که خلاصه می میره یعنی میتونه بمیره همین که میتونه بمیره یعنی یک جورای انسانه و حالا بیه وجهه نیمه خدایی هم داره که میره و خداوند سرزمین مردگان میشه پادشاه سرزمین مردگان میشه اما چیزی که خیلی جالب هستش برای شخص من اقلن خیلی جالبه اینه که ما توی استوره های ودایی که با ما باید اشتراک قاعدتا داشته باشم جمشید رو داریم به عنوان اولین انسان حالا اون شخصیت منو رو هم داریم راجب اونم بعدن حرف میزنیم که یه جوری بعضی معتقدن که منو یک جوری خود جمشیده با یک حالا تظاهر جدید تر اما در ایران ما کیومرس رو داریم مشی و مشیانه رو داریم پس از مشی و مشیانه ما البته طبق بسته به این که کدوم روایت رو بپذیریم باز هفت جفت فرزند مشی و مشیانه هستند پس از اون ما هوشنگ رو داریم و پس از اون تحمورس رو داریم یعنی اینکه در ایران پس از یعنی پیش از جمشید ما چند تا شخصیت دیگه داریم جمشیدی که در وداها نخستین انسان هست اون شخصیت اسطوره‌ای در ایران دیگه اصلا یک شاهیه که شاید به قول آقای فیروزی اصلا یک خیلی دیگه انسان است و خیلی جالبه یک همچین مسئلهی من توی یه برنامه یادم نیست کدوم برنامه گفتم که ما وقتی که میایم پیشفرض این که حتما یه گروهی به اسم آریایان از یک جای خیلی ویژهی در یک زمان خیلی ویژهی یک کوچی انجام دادن رو میپذیریم بعد یه جاهای مثل این جاها گیر میکنیم توی این کتاب نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار ماره آرتور کریستنسن اینجا گیر کرده اینجا میگه که ببینید نخستین انسان در زمانی که ایرانی ها و هندی ها هنوز از هم جدا نشدن و دارن با همدیگه زندگی میکنن جمشیده او داره بر اساس پیدا میگه. میگه قبل از جمعشید احتمال این ها یکی بودن آه. زمان جمشید جدا باشد این هم میتونی یک صنعل تاریخی باشه حالا به هر حال چیزی که اون داره میگردم دا من داید. الان دارم نقل میکنم و میگه که پس ببینید چون پیش فرض قبول کرده دیگه قبول کرده که اینا اونجا با همدیگه اصلا پی... کوچ آرییان رو قبول کرده اون مسیر کوچ تو ذهنشه الان تو ذهنش ایرانی ها و هندی ها کنار همدیگه دارن زندگی میکنن و از دید اون جور در نمیاد که جمشید در هند اون خستین انسان باشه در ایران چندین انسانیه که دیگه پادشاه شده و کاملا زمینی شده در نتیجه چی میگه میگه که احتمالاً ایرانی ها وقتی که اومدن ایران این گروه آریایی هندوآریایی هندو, آریای، هندو ایرانی ها وقتی از هم جدا شدن اون گروهی که رفتن هند اون اسطوره جمشید و با خودشون بردن اونجا دست نخورده مونده حالا بله. چرا دست نخورده مونده نمیدونم این گروهی که اومدن ایران احتمالاً کیومرث و هوشنگ و تحمورس و از بومیان ایران گرفتن بعد بردن پیش از جمشید در صورت که بر اساس مطون خود ما هوشنگ و تهمورست کاملا حالا میخونیم بعدن که چجوری از چه نظر اصلا جز پایگزاران ایران هستن اصلا و این رو میخواستم بگم که پس ما وقتی داریم متون خودمون رو میخونیم حالا این شخصیت کیومرز که بعدن آقای کریمی حتما دربارش بارش توضیح میدن که اصلا معنیش چی هست و چجوره هست ما این شخصیت کیومرس رو داریم، زوج نخستین رو داریم پس از اون زوجمون نخستین، دوباره زوجهای نخستین دیگری داریم که من اگر توصیفات این زوجهای نخستین، کارهایی که انجام میدن رو براتون از مثلا بندهش بخونم میبینین که اینا کاملا انسانهای آغازین هستن حالا من از این زوج نخستین یک بخشی رو میخونم بله اگر فرصت شد، بعدا میریم سراغ مفهوم در واقع خوانی و ایرانویج چون من فکر می کنم که ما اگه بخوایم راجع ایرانویج به تنهایی صحبت کنیم نمیشه ما باید راجب به خوانی هم صحبت بکنیم زوج نخستین رو من از بندهش میخونم که که بودن دوچ کردند حالا شاید نمیدونم شاید بی مناسبت نباشه که پیش از اون همین از بندهش میخونم فعلا داستان مشی و مشیونه. مشی اولین زوج, در... اول زوج توی میان زوج توی میان انسان‌ها ازش ازشون یاد شده. بله میگه که بوندهش فصل 15 هستش. این. در مورد چگونگی مردمان در دین، در دین وقتی که میگه منظور اون مجموعه است که الان به اوستا میشناسیم. گفته شده است گیومرس در هنگام درگذشت نطفه خود را رها کرد آن نطفه به وسیله روشنی خورشید پالوده شد دو سوم آن را نریوسنگ نگاه داشت این نریوسنگ اسم ایزد است و یک سوم آن را سپندارمز نام ایزد دیگری است پذیرفت پس از چهل سال مشی و مشیانه به صورت گیاه ریواسی که یک ساقه و پانزده برگ داشت و نشانه پانزده سالگی آنان بود از زمین روییدند به گونه ای که دست آنان بر گوششان بود و از نظر رشد و از جهت منظر به هم پیوسته بودند هم بالا بودند و چنان به هم پیوسته بودند که پیدا نبود که کدام نر و کدام ماده بود و در کدام یک جان یا فر در بعضی از نسخه‌ها فره اورمزد حضور داشت این حالا در پرانتز بگم این واقعا خود همین داستان مشی و مشیانه به این شک فکر می‌کنم در دنیای باستان بی‌نظیره که زوج اولیه بشر زن و مرد رو کاملا هم بالا و همانند, همانند می‌دونه می به طوری که اصلا معلوم نیستش که نر کدام است و ماده کدام است فکر می‌کنم من حالا همه داستان‌های های نشه جهان رو نخوندم ولی فکر می‌کنم که این خیلی بی‌نظیر و منحصر به فرد است گفته شده است که خدا چه چیز را نخست آفرید؟ جان را یا تن را؟ اورمز گفت که جان نخست آفریده شد و تن بعد حالا جان, البته جان شاید همون روح باشه توی متون دینی. بله تفاصیل مختلف داره تو بعضی از نسخه‌ها هم فر اومده اینجا حالا این ادامه داره میرسه به اینجا که میگه بعد هر دو از صورت گیاه این انسان های نخستین گیاه پیکرن از صورت گیاه به صورت انسان در آمدن. این فره یا جان که همان روان است خودش میگه روان است به صورت مینویی در آنان داخل شد مینویی یعنی به صورت ناپیدا معنوی که ما الان میگیم و اورمزد به مشی و مشیانه گفت شما انسان هستید شما نیای جهان هستید شما را من از جهت کامل اندیشی بهترین آفریده ام کارهای نیک را با کامل اندیشی بکنید این آفرینششون. حالا از کارهایی که انجام میدن داستانش طولانیه. من دیگه فقط میگه آنان سی روز بدون غذا گذرانیدند و با گیاهان خود را پوشانیدند. پس از سی روز راهی بیابان شدند و بز سپید مویی یافتند و با دهان شیر از پستانهان دوشیدند. پد میرسه به اینکه با سی شبان روز گذشت و به گوسفند تیر رنگ سپید آرواره‌ای رسیدند آن را کشتند و با چوب کنا و شمشاد به راهنمایی ایزدان آتشی ساختند ببینید تو اسطوره ما مشی و مشیانه به راهنمایی ایزدان آتش میسازند. تو اسطوره هندی این گونه نیست تو اسطوره هندی اگه اشتباه نکنم جمشید یا شاید پدرش بی هست که آتش رو درست می‌خلق اختراع می‌کنه و میرسیم به اینجا که نخست با, با جامعه از پوست خود رو من اینا رو تیکه تیکه دارم میخونم داستان طولانی همش نمیخونم با جامعه از پوست خود را پوشانیدند بعد چنان که گفتن لباس های از پارچه بافته شده بود و غیره خلاصه این لباس ها رو میپوشن آنان صاحب هفت جفت فرزند فرزند تو امان دو قلو شدند هر جفتی یک نر و یک ماده بود و هر کدام از برادرها و خواهرها زن و شوهر شدند و از هر جفتی از آنان در مدت 50 سال فرزندانی متولد شدند و این هاست که ادامه پیدا میکنه و این جفت ها رو حالا میتونم از متون دیگه بخونم که خلاصه یکی از این جفت های یکی از این فرزندان پسر همون هوشنگ, هوشنگ هست که در شاهنامه از هوشنگ ما میایم جلو دیگه میخوام اینو بگم که ببینید این کاملا داره نشون میده اون کیومرس آغازین که حالا اون انسان آغازین هست اون در واقع بر اساس متون کهانه ما میتونیم بگیم که پیش نمونه انسانه یعنی چون که اصلا توی یه متن دیگه ای ما داریم حالا یادم نیست شاید باز همون بندهش باشه. الان خاطرم نیست ولی داره میگه که کیومرس بلندایش چهار نای بود و پهنایش چهار نای یعنی حتی شکل عادی انسانی براش متصور نمیشن برای کیو مرسمون تو خب میبینیم که در شاهنامه یک روایت ای وجود داره در شاهنامه انسانه واقعا بله؟ حالا این که اینها چه جوری باید توجیح بشه، باید روشون کار کرد. چرا شاهنامه این روایت دیگر برد. رو لابد از جای دیگری داره؟ ما در مورد کیمرس 3 4 تا برنامه خواهیم داشت. به سادگی حتماً باید با اینطور باشه. د. د. حتماً باید مطلبی که شما خود از بندهش دستش و ما در مورد شاهنامه هم از شما سوال خواهیم کرد که مثلا موضوع شاهنامه و اون شکل و تیپ و در واقع چیز تیپیکال شا... که شاهنامه از کیومرس داره ارائه میده چی هستش بله, آ... بله خواهش میکنم من فقط اگر فرصت باشه این قضیه چون من تو برنامه پیش راجب یک کوچه خیلی خیلی آغازین صحبت کردم بله میخواستم یک سندی هم در اون کوچه آغازین در واقع بخونم که باز به همین داستان مشی و چون کاملا ارتباط داره این هم باز از بندهش هستش خواهش میکنم بس اگه تونستید چند دقیقه در دسته یا چهار دقیقه اگه بتونید فقط همینو رو می کنم شش شوف نر و ماده از ایشان پدید آمد برادر خواهر رو بزنی گرفت و حالا همه اینار رو نمی خونم خب از هر یکی ایشان تا 50 سال فرزند بیامد خود به یک سال بمردند مشی و مشیانه پس از یک ست سال مردند از آن شش رفت یکی سیامک, سیامک نام مرد و زن و شاگ بود این داره سیامک رو ما در شاهنامه هم داریم دیگه اینجا سیامک فرزند مشی و مشیانه است مشی و مشیانه در شاهنامه جاشون خالیه در وداها هم نیستند از ایشان جفتی زاد که مرد فراواک و زن فرواگین نام بود حالا فراواک در شاهنامه نیست ولی خب در موتون ما هست این هم برادر سیامک هست از فرواگ و فرواگین هستش که اینجا میگه از ایشان پانزده جفت زاده شد که از هر جفتی گونه گونه بود و بسیاری جهانیان از ایشان بود. اینجا داره توضیح میده که اصلا مردم دنیا از کجا بود. صحبت تا اینجا جهانیه. بلده راجب به جهان صحبت. نسل اصلا نسل بشهره. بله. از آن پانزده گونه نه گونه شان بر پشت گاو سریسوگ این هم حالا خودش داستان جالبیه. بدان دریای فراخ کرد بدان شش کشور دیگر گذشتند. و در آن جای ها نشستن کردند ببینید این اتفاق ها داره در کشور مرکزی که خوانیر هست میفته میگه که نه گونه این مردمان حالا این گاوسری شوکی که جانور باز استوره اسطوره ای افسانه ای هستش که مردمان دنیای باستان بر پشت این می نشستن از آبها ها و در شش کشور پیرامون خوانیر است پخش میشدن میگه که بدان شش کشور دیگر گذاشتن و در آن جایی ها کردن شش گونه به خوانی رست ماندند شش گونه از مردمان تو خوانی رست ماندند بعدن توی مدنای دیگه هم داریم که میگه خوانی از بقیه جاها پر و نه گونه‌شون کوچ کردن رفتن به جاهای دیگه به اون شش قطع خشکی دیگه رفتن از آن شش گونه جفتی، مرد، تاز و زن گوازک نام بودند این ششگونهی که تو خوانی راست موندن یک جفتش نام مرد تازه هست نام زن گوازک ایشان را نشستنگاه به دشت تازیان بود نام تاز و دشت تازیان منظور ا... همین شبه جزیره عربستان بله بله دشت تازیان را نام از اوست و به سبب اوست که چون این خانند. جفتی مرد هوشنگ، زن گوزگ نام ایرانیان از او بودند اینجا تازه داره نجات ها از همدیگه در واقع اون مردمان جاهای مختلف دارن از هم جدا میشن ولی خب فعلا تا اینجا تازیان رو اهل خوانی رسم میدونه و ایرانیان هم که از هوشنگ هستن نه گونه هم که اصلا رفتن به اون کشورهای پیرامون خوانی که حالا دربارشون صحبت میکنیم من صحبت خواهش میکنم خیلی متشکرم از بیاناتتون جناب آقای فیروزی تا اونجا که من میدونم نظریات متفاوت نسبت به مسائل دارند و هم در مورد ایران و هم در مورد مسائل تاریخی و بیشتر پادشاهانه هم شاهنامه و هم متون کوهن تاریخی ایران رو اصلا تاریخی میدونن و بر اساس این مسائلات بر طبق مقالات و نوشته هاشون ما اینو میگه حالا خودشون اینجا هستن حیی حاضر و خوازمیدان. رحمت شما هست جناب. بله، شکرم درود. آرزوم خدمتتون که نه خیلی تفاوت وجود نداره ولی یه سری نکات هست که به نظر من دید من این شکلی هست. من خواهش می‌کنم بفهمم. من بیشتر به موجودیت فیزیکی این شخصیت‌ها قائلم تا تاریخی بودن چون بحث تاریخ اونجایی بیشتر از دانشگاه مطرح میشه که خط باشه از اونجا به بعد تاریخ داریم نه ممکن قبلش هم خط نباشه ولی موجود, باشن. موجود باشن. موجودیت داشته باشه. ببینید ما متون متأخره پهروی که برگرفته از متون متقدم کهن و اولی اوستایی یا حتی بالای بین هرچی بوده بله اینا رو نوشی از اونها هستند و خیلی هم همخوانی دارند ولی خب ما کهنها را از دست از دست دادی ولی خب باز هم میشه برداشته ازشون کرد بهترین متن کهنی که ما میتونیم برداشته اولیه ازشون بکنیم خب وندیدار فرگردی یکم بفیژه اونجاست که داره اون سرزمین هایی که از دید این نیاکان ما شناخته شده بودن نام نامی بره اولینی که نامی بره خواهم ایران ویچه هست که برایشون خیلی سرزمین خوبی بوده ولی خب دوشتار ده ماه زمستان و دو ماه هوای گرم ها رو با قومه تابستان میشه و میگه زمستان بدتی این ها رو در اونجا فرود می آورد یعنی داره واقعا این مت میناله که اینجا دوچار یک سردسیری نابهنگام شده و وگه مگه این بخواست چیز باشه خب مثل اسکیمو که نبودن نیکی هاینا ها زودتر در میرفتن از, از اون فضایی که قبلا قرار شد نه این نابهنگام دوچاره سردسیری میشه و ما خب اینه این از نظر بشری عمر انسان هوشمند ما دو تا چیز داشتیم که میتونه دو تا در واقع یخبندان داره که انسان میتونه این را به یاد بسپره و ازشون بگریزد یکیش بین سی و دو هزار سال پیش تا بیزده هزار سال پیش بوده. یکیش ما خیلی که شون زایده تو هزار سال پیش. حالا این کودمه کاری نداریم. ولی خب سر زمین‌هایی که بر از این داره ردیف می‌کنه، این جهت جغرافیایی داره در متن آبیزایی. این داره همیج میاد به جنوب، بعد فرارود دو به جنوب. میگه سو واقع میگه مر واقع میگه بالخ واقع باد میگه نسایی بین بالخ و میاد جنوب. می‌رسی به حریات و دریاچه سالاتی درشهطر برات نبییم به خاطر خیصالی وحشدنایی که در 2014فراتی رو رخ داد این در اچ نیست اصلا فراطی رو به گونه مختلف توصیف میکنن. یا بلخ خیلی زیبا داره یا اورو دارای چراگاه های سرشار بود یا گرگان یا فلان حرفایی این همین چیز داره میاد به جنوب بعد این جنوب کم کم به دل قربرم میزنه یه مقدار به سمت به میره. عین همین بازنویسش رو در بندهش، و ما اونجا میبینی که به شده نه تنها به شده این نوشته ها بعضی جا هم هست، است بعضی جا به شده بعضی جا اصلا عوض شده یعنی اصلا عوض شده یعنی ایرانویج رو داره بالا مرحله بعد از ایرانویج رو آسور معرفی میکنه یعنی اصلا زره دل به آناتولی و آسیای کوچک و بعد نام از ارمنستان میاره. دستوری که تو متن اوسه از ارمنستان نیست. خب این اگر کوش در هزار اول طبق این فرمان شاتی که این نزهه پرازان جدید مطرح میکنن اگه می‌خواست هزار اول بشه ارمنستانو میشناخت طبق متن پهلوی و تو متن اوسه ارمنستان نیست. از خیلی کمنتر از این حرفاست. ذهنی که در زمانی که ارمنستان ها سرما وجود داره که این از چی کردن؟ گروه سرما فرار کردن. این قزایری ما داریم. ولی خب وطن اولیه ایرانویچ دچار سرما هستش. وطن بعدی داره وارد فلات ایران میشه این متن کهن داره نش... دیگه مختصر جغرافی فلا داره نشون میده میاد به مازن... ورنه که در متن اوستایی میگه چارگوش بود فریدون فلانکار رو کرد و در متن چیز میگه که بوندهشی متأخر میگه که نزدیک آب ولی خب دماوند هست ما این که ورنه تو اوستا بغل مازندران و نزدیک آبم باید بغل مازندران نزدیک آب هست. نه دماوند این باید سرزمین غربیش باشه گیلان احتمال فراوان این هست و این خیلی دی به قرب اومده. و بعد در آخرین مت در ناحیه در نوشته اوایی هنوز هندیار هم نمیشنناند در مت بانش هندیار هم اونجا رو میشنناه اونجا کردش سرزمین هندوان، در سرزمین بعد از این میه که در جایی که رود سرچشمه رود رنگ است و اونجا دیگه آخرین نقطهسی قلم میافته در متن متخرتر میه که اونجا دشت تازیان است هم رود جژل یعنی این گستره پراکندگی رو در متن شما کهن اوستایی دارید می‌بینید که دیگه آخرین نقطه میگه رود حالا برودش رود دجله و از شرق هم تا کابل و شرق کابل حتی واحه پنجاب هم میشن در زمانی که فلات با الان خیلی فرق داره خب این پس ایرانویچی که صحبت می‌کنم بعد برون از این فلات ایران یا شرق فلات ایران مثلا افغانستان اینا باشه تا قربش هم نیست این بعد درهای شمال بهش دو هم بشه باید جایی باشه باید سرد بشه دیگه اینجا فلاتی ایران که دشوار، دوشار, دوشار پربارانی بوده دوشار خوشسالی بوده مقتعی جایی سرد داره ولی یخمندان ایش به فلات نایمده این را بهش باید نایی شمالی تر باشه و با این جهت جغرافی باید در نوای فرارود باشه اگر روتهای قابل کشیرانی داشته یا خیلی خروشان داشته به تو فرارود میشه پیدا که روتا رو هم هنوز روتها ر اه ولی خب اینا به فلات میان میتونه ما دوباره میگن که با حکومت تشکیل میاد و این کشور خوانی ره است که یکی از اقلیم های مختلفی است که تشکیل میشه بدون مرکز قرار داشته این نمیتونه یک جا ایران ویش باشه و بعد دور باشه بیاد جای دیگه باشه این بعد یک سرزمینی جدا از ایران ویش باشه بعدها تشکیل شده باشه سرزمین اولیه بعد از جا به جایی بوده باشه و خیلی هم کوه هم بوده باشه. اینقدر کوهن که پاچه های چهار رومش جمشید دوشنه با سرمخ شده این در ازاره اول دو و و اون چهار روم پنجامشیشون نمیتونه باز رو میبرن نزدیک به همون یخبندان باشه باز این سرزمین اینقدر کوهن هست موجودیتش و با اینکه حالا میگم, متون میگم متفاول از ایران و ایچ ولی به همون اندازه قداست داره و مهم هست براشون و یک رو یخبندون میشه اینا رو ما باید ترتیبشون من ملاحظه کنیم و بتونیم بین موتون بینشون ارتباط پیدا کنیم ارزم خدمتتون نکته آخر آخرین سرزمین هست که میخواستم این رو بگم ببینید این آخریش خیلی برای من جذاب هست اینا متن عویستای اینجور میکرد گرشاسب پهلمانست به دوران فریدو هنوز اون کشور خوانی رسه باشه چون کشور دقصیم نکرده اشاره هم کرده باشه ما نمیدونیم به سه بسمت ولی میگه که پهلوان این فریدون رسیده به جایی در رو در رود رنگ‌ها به آبشار بسم گوسا اینن بعدها توی متن متأخر آشوری داریم این همچین است در شمال سوریه فعلی در شمال میارودان شرق سوریه فعلی یعنی چطور این هندو اروپایی های اولین نیاکان ما یه منطقه در روزگار کوهنه که هنوز شده بندان هست در شرق سوریه بهش دست یافتن و ازش اطلاعات داره و اینجا دیگه ایست کردن این یکی نوکالیس ما باید بدونیم که اگر مهاجیت متأخر بوده این یخبش، ارتباط بین یخبنا و این آبشار در این سرزمین خیلی غربی چجوری میتوند برقرار بشه اینا رو میشناختن و حضور رو کوهنتر داشتن به من اینها ترتیب خواهند داشت. و اتفاقا من برخلف آقای نظر آقای ایرامرت یکی از اون کسانی هستم که خیلی اعتقاد دادم که نه این شخصیت ها خیلی موجودیت داشتند حتما هم فریدون با یه تاجی حالا از تلان از چوب درخت ولی روسترش بوده لشکرکشنی هم کرده ولی بله اینا در جاهای دوشار داستان های امروزیشون دوشار شاخ و برک شده کردن به نماد. یه جایی این حرکتشون نما... یک خاطره دورانی است و اینطور فکر نکنیم که نه این نه بعدنشا ق قصه... فرصدم روشن آاتادمی هم داشتن خ حالا مثلا ما این فریدون رو بکنیم دوران فلان تاریخمون حالا این ش هم میشه فریدون نه این شکلی هم نبوده اینا شخصیتهایی بودن که بعدا به مرور بعضی کردارهاشون افسان کن و بعضی کردارشون نمادین میشه بله مشککررم قطعا در این بس خواهیم کرد و باصلی زیادی رو می طلبه که اساسا اینا نماد نماد دوره هستن یا شخص بودن یا چه اتفاقی افتاده که این اسطوره‌ها بهش اضافه شده و این مسائل باید بررسی بشه متاسفانه وقت برنامه هم رو به پایان هست وقت به جناب آقای کریمی نمی‌رسه متاسفانه امیدوارم در قسمت آینده از ایشون شروع بکنیم و در مورد بحث زمان شناختی اصلا معنای کلمه کیومرز رو از ایشون سوال بکنیم شبندگان گرامی شما رو تا آغاز قسمت 13 ام این برنامه خداوند متعال بستارم. خدا یارو و